در زمینه تناسخ سعودی هم که گفتیم مسیر تکامل انسان را یک مسیر چی دیده بود؟ منفصل و منقطع دیده بود که در واقع گذر از نبات به حیوان بعدش به انسانیت دیگه مقام انسان که این وسط هم نبات برای دریافت ح... حیات در واقع آماده از انسان هست و انسان شهسته از سایر انواه هست و همین خاطر باید ح... خدمت شما هر شود حیات در ابتدا به نفس نباتی تعلق بگیره بعد از طی در واقع مراحلی به بدن انسان انسان در واقع منتقل می شود ایشون یه شق فل... در واقع منطقی و فلسفی رو مطرح می کنن و به قائلان به تناسخ سودین گونه پاسخ میدن اینه که آقا اینی که شما می گید نفس منتقل از نبات به حیوان و سپس انسان این نفس در واقع بلاز واقعیت چه شکلیه؟ آیا موقعیتش یه موقعیت و حالت در واقع انتباعی در متعلق خودش داره؟ انتباع در متعلق خودش داره؟ یا اینکه یه موجود مجردی که تو ذات خودش بینیاز به بدن مادی هست؟ یه جوری در واقع بدن فقط ابزار هست و توی فعالیت و این امور, امور در واقع عنوان یک ابزار از اون استفاده میکنن حالا اگر ما بگیم که این نفس طبق نکته که اینا گفتن قائلان به سعودی گفتن بگیم آقا نفس یه موقعیت انتبایی تو متعلق خودش داره این سه حالت رخ میده یا حالت پیشین میشود که میگیم نفس در موضوع پیشین منتبع میشه یا اینکه میگیم حالت پسین داره که نفس بعد از انتقال نفس تو بدن دوم منتبه میشه ببینید پیشین یعنی که چی یعنی شما فرض میگیره تو حالت پیشین دیگه حالت پیشین نفس منتبه شده همین حالت هایی که ما گفتیم دیگه نبات و حیوان و انسان درسته یعنی تو حالت پیشینه یعنی تو حالت یا نبات یا حیوان شما فرض میگیره تو یکی از اینا مثلا انسان انسان، حیوان و نبات. برای انسان حالت پیشی نمیشه چی؟ حیوان. دوباره برای حیوان میشه چی؟ نبات. میگیم یا تو این منتبه میشه؟ یا تو حالت بعدی؟ یا در واقع نفس ببینید معکوس میشه دیگه. نفس به جای که منتبه در به فرض نبات شه در حیوان منتبه بشه. یا اینکه به جای که منتبه در حیوان شه در انسان منتبه بشه. یا اینکه ما میگیم حالت انتقالی داره به این شکل که از در واقع تو مسیر تکاملش از موقعیت اولش گسسته و به دومش نپیوسته یعنی نفس به نبات در واقع تعلق نگرفته و به حیوان هم چیه نپیوسته خب تو این حالت خدمت شما عرض شود که ایشون میگه چگونه میتواند هستی به تحقق خودش رو حفظ کنه در حالی که واقعیت آن انتباه در غیر و حال در محل است و فرض این است که در این حالت یعنی حالت سوم هنوز موضوعی پیدا نکرده و موضوعی به دست نیورده خب دیگه این بحث هستی هستی اون دیگه مطرح نمیشه ببینید مشکل سومیه که دیگه از همه حادتر بود دیگه مگه میشه منتقل شه و نپیونده؟ شما میگید این نفس در واقع به هر کدوم از این تو مسیر تکامل به هر کدوم از این وجودات در واقع از اولی گسسته بشه به دومی هم نه نه پس دیگه هستیش معنی میشه مثلا بگیم که از حیوان گسسته شود و به انسان نیست پیوسته نشود این دیگه بیمعنی بیمعنی هست دیگه میمونه شق دوم پس اینگونه ما این مطرح شد شق دوم این که موقع نفس در واقع موجود مجردی است که تو ذات خودش نیاز به بدن مادی نداره این بدن فقط توی فعالیت یه نوع در واقع آلت و ابزار هست ایشون میگه این مشکل هم به شکل دیگه هست ببینه من یه بار دیگه مرد قبلی رو گفتم آ. تو حالت پیشی نفس در موضوع موضوع قبلی خودش منطبع میشه یعنی اینکار نفس یا تو نبات حال شکل گرفته یا تو حیوان دیگه تو انسان در واقع چیه وجود نیافته است خب این که خطا هست در حالی که انسان چه داره؟ نفس داره حیوان هم نفس داره نبات هم چیه؟ نفس داره بگیاند این اینا اشتباه است دیگه تو حالت بعدی هم که همین نکته که بهتون گفتم تو حالت بعدیش بگیم که نبات نفس نداشته باشه، حیوان داشته باشه. در حالی که نبات هم نفس دارم. اونورم بگیم حیوان نداشته باشه، انسان داشته باشه. در حالی که چیه؟ حیوان هم داره. حالت انتقالی که دیگه هیچی. یعنی دوتو ندارن دیگه. هر دوتو ندارن که اینم دیگه خطاش فاحشه خب حالا تو شق دوم <تص> اینا که گفتیم موجود مجرده که تو ذات خودش نیاز به بدن مادی نداره و در واقع بدن فقط ابزار هست، ایشون میگه مشکل به شکل دیگر هست است. اونم این که مثلا نفس متعلق به حیوان آنگاه که در حد حیوان تعین پیدا کند نمی‌تواند به بدن انسان تعلق بگیرد. درسته؟ گفته موجود مجرده که تو ذات خودش به بدن بدن مادی نیاز نداره. نفسی که متعلق به حیوان هست اونگو که در حد حیوان ت... تعیون پیدا کنه نمیتونه به بدن انسان تعلق بگیره زیرا نفس حیوانی از آن نظر که در درجه حیوانی محدود متعین گشته کمال آن در دو, دو قوه معروف شهوت و غذبه اینها قوه شهوت و غذب برای نفس تو حالت حیوانه چی هست؟ کمال هست این شده به کمال خودش رسیده دیگه. اگر خدمت شما هر بالاترین کمال حیوان اینه دیگه. شهوت و غذبه. در حالی که این ببینید نفسه اومده تو بدن حیوانی قرار گرفته حالا به تحبیرشون داره مراحل تکاملش را تیمی کنه دیگه. خب این رسیده به چی؟ کمال شده شهوت و چی؟ کمال شده شهوت و غذب. حالا این نفس به کمالش رسیده حالا شما میگه تجرد نداره این میخواب منتقل بشه چی؟ منتقل بشه به انسان این که خدمت شما شود که برای انسان تعالی نیست که به تعبیریشون در حالی که این دو قوه برای نفس انسان انسانی نه تنها مایه کمال نیست بلکه مانه به درجات رفی است. در واقع ما چگونه میتونیم نفس حیوانی را در واقع بگیم پایه تکامل انسان هست در حالی که کمالات نفس حیوانی و کمالات نفس انسانی در تضاد و تباین با هم دیگه هستن شهوت و قذب در واقع کمال نفس حیوانی است در حالی که همه ما میدونیم کمال نفس انسانی در واقع چی از قوای عقل نظری و عملی است؟ اینه دیگه اینکه مولانا میگه وقت خشم و وقت شهوت مرد کو طالب مردی چنینم کوب کو این ویژگی ما که در واقع این نیست یا اینکه امامالی علیه توی یکی از نامه های نهج البلاغه وقتی گله میکنه مردم, مردم اینگونه شده هم کلابون آویه و سباون لاریه یه ده از مردم در واقع ما میگه در حد چی شدن؟ در حد حیوان شدن مثل هایی هستن که او او میکنن و در که چیه در واقع تعمه خودشون رو میدارند. این کلم ما میبینیم بعض از جهان خواران اینجور هستن اینا توی کمال نفس حیوانی قوت برن. چیزی به عنوان کمال نفس انسانی ندارند پس اگر شما میگید موجود مجردیه که تو ذات خودش نیاز به بدن مادی نداره فقط بدنه شده ابزار خب ما به شما میگیم بدن توی در واقع در واقع زمان تو مرحله نفس حیوانی چی میشه در واقع این که شما میگید ابزار نداره دیگه این در قالب حیوان اومده دیگه تعلق گرفته به بدن حیوان و چون تعلق گرفته به بدن حیوان این نفس مرحله تکاملش میشه چی شهوت و غضب حالا این منتقل بشه به چه چیزی؟ میخواه منتقل بشه به نفس انسانی با اینها میشه تبایون و تضاد ایشون نکته جالبی رو میگن میگن قائلان به تناسخ سعودی در واقع سوراخ دعا رو گم کردن یعنی اومدن مراحل تکامل رو گفتن منطقه در واقع به شکل منفصل و گسسته در حالی که تکامل نفس و حرکت جوهری چیزی که ملا صدران میگفت به صورت پیوسته و با بدن واحد تحقق پیدا میکنه ایشون دیدید که ملا صدران میگو همزمان تعییناتی که بدن پیدا میکنه اینه که ما از این مراحل چیز عبور میکنیم درسته؟ توی مسیر تکاملی خودمون آنن همین بدن رو که داریم این بدنی که ما داریم این بدن هم میتونه جنبه حیوانی داشته باشه و هم میتونه جنبه مثالی داشته باشه بسته به این داره که ما چیه؟ اینها رو چقدره؟ در واقع در مسیر تکاملی مورد استفاده قرار گرفته ایم. در حقیقت تو حرکت جوهری جماد تو مسیر تکاملیش به انسان میرسه اما هیچ زمان تو مرتبه ای نیفته و ویژگی های هر مرتبه ای در واقع به صورت مشخص, مشخص رو واجد نیست بله جماد تو مسیر تکاملی خودشیه یعنی ببینید انسان جماد نهایت نهایت نهایتش میرسه به اولین حد انسان در اول تو حدی میرسه دیگه اما نکتهش اینه که هیچ موقع ویژگی ها رو شما چیزی که ایشون میگه ویژگی ها هر مرتبه رو به صورت مشخص واجد نیست و می خاطر سیر جماد از طریق از این طریق مایه تکامل هست در حالی که سیر پیشین مایه ایشون گفته جمع بین ازداد و انحطاط به درجات نازل‌تره چیزی که ملا صدرا میگه ها یعنی شما ببینید انسان شما در نظر بینید حیوان حیوان یه مرحله‌ای داشته مرحله نباتی این مرحله نباتی را ما داریم مرحله نباتیش تکامل پیدا می‌کنه تو مرحله حیوانش و تکامل پیدا می‌کنه تا کجا در واقع همون شهبت و غذب خب ما الان ما انسان ها هم وقتی تو مسیر تکاملی خودمون به جای که تکامل پیدا کنیم در واقع خدمت شما هر شاید انحطاط پیدا می‌کنیم می‌ریم توی جنبه حیوانی خودمون این نفسمون در واقع تو حالت قرار میگیره تو می می‌شوید سیر ما در واقع آل سالینه که ما حیوانیم در واقع آیا ما با حیوان یکی هستیم الان یا این ملکات و خو های ما هست شما الان میخوام میگم که ما تو یه حد میاییم تا یه حد تا سمت حیوانیت میتونیم بیایم، اما سمت دیگرمون اوج میگیره و با حیوان یکی نیست یک سمت اون میاد نزدیک به کمال حیوان میشود اما مرحله دیگرمون که همین این این که تکامل پیدا میکنیم از این مرحله در واقع چی میشیم؟ فراتر میریم پس مثلا جمع از داد اگر ما بگیم که اینها خدمت شما عرض که انسان و حیوان این مدل بگیم جمع از داد میشه دیگه کمالات اینا با هم فرق داره دیگه هیچ ما شما نمی‌تونید کمال نبات رو با کمال حیوان و کمال انسان یکی ببینید اگر یکی ببینید میشه جمع از داد خب امیدوارم که مطالب این بخشمون مفید فایده واقع بوده باشه حالا ایشون یک بار دیگه تو بخش صفحه دیویست و من احساس میکنم مطالب داره تکرار میشه ها ایشون بین دلایل زیادی که تو ابتال تناسخ گفته شده دو تا دلیل را ذکر میکنم یکی تعلق دو نفس به یک بدن و دیگری نبود هماهنگی میان نفس و بدن هست پیرامون مرد اول تعلق دو نفس به یک بدن شما مشاهده میکنین که ایشون میگه که لازمی قول و تناسخ به طور مطلق تعلق دو نفس به یک بدن همون تناسخ نامحدود که گفتیم هندوها به اون قائل هستن اینو داره میگه لازمه چی میشه تعلق دو نفس به یک بدن و اجتماع دو روح در یک تن میباشد حالا ایشون میگه این برهان را میتوان با قبول دو اصل مطرح کرد یعنی اگر شما میخواید مطرح کنید دو تا اصل اینجا دارید یکی اینکه هر جسمی هم از نباتی و حیوانی و انسانی آن زمان که آمادگی و شایستگی تعلق نفس داشته باشن از مقام بالا, بالا نفس بر اونها تعلق میگیره چون مشیت خدا تعلق گرفته که هر ممکن را به کمال مطلوب خودش برسونه این که ما باش مشکل نداریم وقتی میخواه آمادگی تعلق نفس رو داشته باشه از مقام بالا نفس بهشون تعلق میگیره یعنی حق تا این در واقع انایت رو در حق اونها پیاده می کند در این صورت در واقع سلول نباتی خواهان نفس نباتی نفس حیوانی خواهان نفس حیوانی و جنین انسانی خواهان نفس انسانی باشد کامین نکته دومین دو مقدمه اینه که دومین دو مقدمه اصلی است که هرگاه با مرگ انسانی نفس وی به جسم نباتی یا حیوانی یا جنین انسان تعلق گیرد در این صورت جسم و بدن مرد تعلق این نفس دارای نوعی تشخیص و تعیون و حیات متناسب با آن خواهد بود. ببینید. مثلا شخص الف شخص رو ما داریم میگیم. در مورد حیوانات اینا هم میگن. دید. شخص الف در واقع حالا اینا میگن منتقل میشه نفسش ده به جمعه تو جسم حیوان و حتی نبات و اینه حالا ما میگیم منتقل شده به یه جنین انسانی درسته؟ تو این حالت در واقع شما میگه که جسم و بدن این که منتقل شد به جسم و بدن در واقع شخص ب جسم و بدن مورد تعلق نفس دارای نوعی تشخص و تعیونه جسم شخص ب یه تعیونی دیگه داره لازمش اینه که یه بدن به یک بدن دوتا نفس تعلق بگیره خواب که معلوم شد حالا اجتماع دوتا نفس تو یک بدن از دو نظر باطله یکی اینکه که برخلاف وجدان هر انسان هر انسان مدرکی هست همین ما میدونیم خدمت شما شود که اینگونه نیست که الان من روح من که با من تعلق داره این روح من در واقع متناسب در واقع جسم شخص قبل از پیشم قبل از من بوده یعنی انگار اون آدم خاطراتی داشته یه تکاملی داشته با اون بوده اصلا هیچ تجربه هیچ وجدان و درک ما درک انسانی این رو در واقع نمیپذیره. این اشتباه هست دیگه ثانیا لازمه که از نظر استفات نفسانی داره دو وسم مشابه باشد از استفات نفسانی دیگه ببینید خب این نفس آن چیزی که دارد بس که بسیار مهم هست این نفس در واقع صفاتی داره دیگه وقتی برای موجود پیشین بوده حالا تعلق گرفته به موجود پسین در واقع باید وصفاشون مشابه باشه مثلا ایشون میگه اونجا که از طول آفتاب آگاه می شود و یا به کسی عشق می باید در خودش این حالات را در حقیقت به طور مکرر در یک آن, آن بیاود خب خیلی ساده تر نتیجه تعلق دو نفس به یه بدن داشتن دو شخصیت و دو تعیون و دو ذات تو یک انسانه لازمش اینه که واحد متکسر و متکسر واحد بشه که این دیگه خلاف عقل هست چیزی که ملاستد را میگه همه ما این را میدونیم دیگه این خلاف وجدان و عقل این فرض افسون برین که از نظر عقل محاله محضور دیگر هم داره اونم این که باید هر انسانی در هر موردی دورای دو اندیشه و آگاهی و دیگر صفات نفسانی باشد مثلا فرض دا فرض بگیرده آدم پیشین آدم چی بوده؟ خیلی آدم صبوری بوده درسته؟ آدم بدنه بعدی که نفس به اون تعلق می‌گیره این خیلی آدم جوشی و در واقع زود از کوره در میره این یه تناقض بین این یه تناقض یه دو قطبی بین صفاتش باشه یا مثلا دو تا اندیشه داشته باشه اون سطحی نگیره این عمقی نگیره بین چیز به هم ریخته میشه دیگه این تعیون ها و تشخیص ها از بین میره یادتونه ما قبلا توی شبهات معاده جسمانی مورد که گفتیم نظر علام طباطب اینها اومد اونجا بس تجرد و تشخص رو ما گفتیم این بدنگر پوسید بس آکل و بود مطرح کردیم و تشخص حفظه این فرض نباید بشود که این در واقع از میان میرود تشخص حفظه خب آلایشون نکته ای رو مطرح میکنن پاسخ به یک سوال میگن که ممکنه به نظر برسه که سلول نباتی گاه که آماده تعلق نفس است و یا نطفه حیوانی و جنین انسانی که شایستگی تعلق نفس را دارد تعلق نفس مستنسخ در واقع مانه از تعلق نفس دیگه بشه و تو این صورت دو شخصیت و دو نفس وجود نخواهد داشت دقت کرده دا سلول نباتی اون موقع که آماده تعلق نفسه خدمت شما هرچبت این تمر تعلق میگیره دیگه این خودش که داره تعلق میگیره اون نفسه این خود شخصیت جداگونه میگیره اون شخصیت قبلی رو نمیگیره مثلا نفسه میاد برای این بدنه کاری دیگه به قبلی نداره ایشون میگه که هر یکی از این بدنها آمادگی نفس بدن نفس واحدی را دارد و تعلق هر یک مانع تعلق دیگری است را باید مانعیت یکی رو بپذینیم و از دیگری صرف نظر کنیم و تر حقیقت مانع بودن نفس مستنسخ از تعلق نفس جدید بر این سلول یا نطفه یا جنین انسانی اولا از عکس آن نیست درسته؟ و اون اینکه تعلق نفس مربوط به هر سلول جنین مانع از تعلق نفس مستنسخ می باشد و تجویز یکی بدون دیگری ترجیه بدون مرجع است که همون مطلب داره تکرار میشه دیگه اون بس که مطرح شد که تکرار مطالب پیشین است حالا در مورد مقدمه و اصل دوم نبودن هماهنگی میان نفس و بدن ایشون میگه که ترکیب بدن و نفس یه ترکیب واقعی و حقیقیه ترکیب در واقع صناعی و خدمت شما ارش خواهد قرار دادی اینا نیست این وحدت ها برقرار دیگه و همین خاطر نفس انسانی هماهنگ با تکامل بدنش هست دیگه شما موقع مشاهده می‌کنید زندگی نوزادی و کودکی و نوجوانی اینا اینا در واقع ما همین جور که داریم مسیر قوای خودمون رو به تدریج به فعلیت می‌رسونیم در واقع این حالت‌ها معلومه دیگه حالا سوال نه که این نبودنه رو داره میگه نبودن هماهنگی نفس با کمالات فعلی که کسب کرده چش... چگونه میتونه با سلول نباتی یا نطفه حیوانی و جنین در واقع جنین انسانی متحد و هماهنگ بشه وقتی به هماهنگی رسیده ببینید این تکرار هم مطلب پیشین بود که بهتون گفتیم وقتی ما به کمال می رسیم گفتیم اقتضای اینایت اقتالا هم این بود دیگه بس که, که مطرح شد دقیقا توی صفحه 998 پایین همین بود دیگه مقتضای حکمت اینه که موجود به تکامل برسه از اون برم خصیصه ذاتی نفس این است دیگه حرکت از کمال به نقص در واقع نمیشه چی بگیم خصیصه ذاتی یک شی باشه این هم مطلب اونجا تکرار شد پس این بس عدم همه میون نفس و بدن در واقع تو قالب های در غالب صورتهای تناسخ در واقع چی است موجود است